بخشه چهار روم بلکمان خوشقلب فروشنده موجزات اولین یک شنبه که او را دیدم به نظرم مثل قاطر میدان گاف بازی آمد بند شلوارش سفید بود و هاشی دوزی گلابتونی داشت انگشتری هایی با نگین سنگ های رنگی در هر انگشت و گیسوبانش را با زنگوله ها بافته بود در میان شیشه های تریاق و گیاهان مسکن که خودش درست میکرد و در دهات جزایر کرایب میفروخت، در کنار اسکله بندر سانتا ماریا دلدارین روی میزی ایستاده بود. از بس داد زده بود صدایش گرفته بود. البته این بار قصد فروختن خرت و پرت به سرخ پوستان را نداشت. بلکه از آنها خواهش میکرد که برایش یک مار راست راستکی بیاورند تا بتواند اثر تریاقی را که خودش اختراع کرده بود نشان دهد. ها آقایان این تنها پاد زهر مسلم نیشمار، روتیل هزار پا و هر نوع جانور سمی دیگر است کسی که به نظر میآمد کاملا تحت تأثیر او قرار گرفته است؟ یک مار افعی از بدترین نوعش از آنها که نفسش آدم را مسموم می کند معلوم نبود از کجا گرفت و توی بطری برایش آورد او با چنان اشتیاقی در بطری را باز کرد که همه ما فکر کردیم میخواهد آن را بخورد اما به مجرد اینکه افعی خود را آزاد احساس کرد از بطری بیرون پرید و چنان گردنش را نیش زد که نفسش را بند آورد و حتی فرصت نکرد دست به تریاق بزند. میز داروها روی جمعیت واژگون شد و خودش روی زمین غلط خورد و هیکل گندش چنان به نظر تحلیل رفت گنگار درونش پوک و تهی بود اما در تمام این مدت او با آن دندانهای طلایی‌اش می‌خندی. چنان قشقری غزیمی به پا شد که کشتی در سواحل شمادی که 20 سال بود آنجا به منزله هیئت حسنیت لنگر انداخته بود برای اینکه زهرفعی ای به کشتی نرسد اعلام قرنطینه کرد و مردمی که برای تقدیس یک شنبه نخل گرد آمده بودند با شاخه های زیتونشان از کلیسا بیرون آمدند چرا که هیچ کس خواست منظره مرد مارگزیده را از دست بدهد که با باد مرگ شروع کرده بود به باد کردن و دو بار چاختر از قبل شده بود و از دهنش زرداب بیرون میریخت و از تمام خلل و فرج خود نفس میکشید اما هنوز با چنان سرزندگی می خندید که تمام زنگوله های گیسوانش در سراسر بدنش جلنگ جلنگ میکرد آماستنش بند شلوارش را پراند و درس لباسش را شکافت انگشتانش از فشار انگشتری های شد رنگش مثل رنگ گوزن نمکسود شد و از انتهای گردش نشانه آخرین لحظه های مرگ برخواست طوری که هر کس که آدم مارگزیده دیده بود می‌دانست که پیش از آن که بمیرد چنان آشلاش و, و مچاله خواهد شد که مجبورند او را با بیل و خاکنداز جمع کنند و توی کیسه بریزند. اما مطمئن بودند حتی در آن حال نیز او به خندش ادامه خواهد داد. و از حالش چنان باور نکردنی بود که دریانه وردان برای گرفتن عکسهای رنگی با دوربینهایی که از فاصله دور هم عکس می‌گرفت، به بالای عرشه کشتی رفتند. اما زنهایی که از کلیسا بیرون آمده بودند، قصد خود را فراموش کردند و او را با پتو پوشاندند و شاخه‌های زیتون رویش گذاشتند. ادعی به این دلیل که نمی‌خواستند سربازها با آن سازهای مخصوص ادونتیست ها به او بی‌احترامی کنند، ادعی برای اینکه از نگاه مداوم به آن مرد بت است که آماده بود همچنان خنده بر لب بمیرد وحشت داشتند و دیگران به دلیل اینکه به این طریق شاید روحش دست کم مسموم نشود همه او را مردن گاشتن که او با یک دست شاخهای زیتون را کنار زد هنوز منگ بود و از آن لحظه های مرگبار کاملا نرسته بود اما میز را بدون کمک کسی چید یک بار دیگر مثل خرچنگ از آن بالا رفت و دوباران بالا شروع به داد و غال کرد که تریاقش چیزی جز رحمت الهی نیست که در آن بطری بیخته است همانطور که ما همه به ششم خود دیده بودیم و قیمتش دو پول سیاه است. زیرا آن را برای فروش اختراع نکرده است بلکه فقط به خاطر خیر و سعادت بشر است به محض اینکه این حرف از دهانش درآمد خانوم آقایان، فقط از شما خواهش میکنم که ازدحام نکنید، تریاق به اندازه کافی برای همه هست، همه ازدهام کردند، و واقعا چه کار خوبی کردند برای اینکه دست آخر تریاق به همه نرسید، حتی دریا سالار کشتی هم یک بطر از آن تریاغ خرید، چرا که او را متقاعد کرده بود که برای گلوله های سمی آنارشیست ها خوب است، و دریا از گرفتن عکس های از روی میز راضی نبودند. چرا که نتوانسته بودند از او در حالت مرده عکس بگیرند؟ اما وادارش کردند که عکسها را با دست خود امضا کند تا آنجا که دستش به درد آمد. داشت شب میشد و فقط مبود ترین ما آدمها در آنجا مانده بودیم. با نگاهش دنبال کسی میگشت که قیافه احمقها را داشته باشد تا بتواند در جمع کردن بطریها کمکش کند. و طبیعتا مرا نشان کرد نگاهش به نگاه سرنوشت میمانست نه فقط سرنوشت من بلکه به سرنوشت او نیز. زیرا یک غرن از آن روز سپری شده بود و ما هر دو چنان آن را به خاطر می آوریم که انگار یک شنبه پیش اتفاق افتاده بود چیزی که اتفاق افتاد این بود داشتیم داروهای نمایشیاش را توی شمدانی با نوارهای ارغوانی که به کیف مدرسه شبیه بود میریختیم ریختیم که متوجه نوری در درون شد گویا پیش از این آن را ندیده بود زیرا با لحنی مطمئن پرسید تو کی هستی؟ جوابش دادم که من نیتیمی هستم که هنوز پدرش نمرده است و او چنان خنده بلندی سرداد که از آن چه همراه زهر فرو داده بود قوی تر بود آن وقت پرسید برای گذران زندگیت می میکنی؟ و من جوابش دادم که کاری به جز زنده ماندن نمی کنم زیرا هیچ کاری به زحمتش نمی او که از فرط خنده درآمده بود پرسید چه علمی را در دنیا بیشتر از همه دوست داری که یاد بگیری و این تنها باری بود که من بی هیچ شوخی حقیقت را به او گفتم. دلم میخواهد قیبگو باشم. و این دفعه او نخندید ولی با لحنی که انگار با صدای بلند فکر می کرد گفت که فاصله زیادی برای رسیدن به آرزویت نداری زیرا به نظر او آن چه از همه واجبتر بود در چنگ خیش داشتم و آن چهره احمقانه بود همان شب با پدرم حرف زد و مرا برای همیشه به یک رئال و دو پول سیاه و یک دست ورق که ماجرای خیانتهای جنسی را پیشگویی می کرد، از پدرم خرید. بلکمان بد چنین بود، زیرا بلکمان خوشغلب خود من هستم. میتوانست یک ستاره شناس را غانه کند که ماه فوریه چیزی به جزگلهی فید نامر نیست، اما وقتی خوشبختی به او رو می آورد به جانوری مهربان تبدیل می شود. در اوج شکوه و شهرتش نایب السلطنه ها را مومیایی میکرد و میگویند که با آنها چنان چهره پر و پر اقتداری می بخشید که زالهای سال بهتر از موقعی که زنده بودند به حکومتشان ادامه میدادند و هیچ کس جرئت نمی کرد آنها را دفن کند تا اینکه او چهره مردوارشان را به آنها بازگرداندن اما شهرت و اعتبارش را با اختراع یک نوع بازی پایان ناپذیر شطرنج از دست داد این بازی کشیشی را دیوانه کرد و دوتن از شخصیتهای بنام را به خودکشی واداشت این چنین بود که کارش رو به از گذاشت و از تعبیر کننده خوابها بیپنوتیزم کننده جشنهای تولد و از کشیدن دندان آسیا از راه تلغین به تبابت در بازار مکاره کشید چنانچه وقتی همدیگر را دیدیم مردم حتی ولگردها نیز به او چپ چپ نگاه می کردند با بساط شعبد بازی و خرت و من بی مقصد راه افتاده بودیم و زندگی انگامی که می کوشیدم گیاهی را که قاچاقچیان را نامرئی می کرد و قطراتی را که زنان تعمید دیده دوزدکی در سوپ شوهران هلندیشان میریختند تا ترس از خدا را آهسته آهسته به آنها تلقین کنند و هر چیزی را که به اراده خود میخواستی به خریب فروشیم تردیدی ابدی بود خانومها و آقایان این یک دستور نیست بلکه فقط خواستیم نظرمان را گفته باشیم وانگهی سعادت هم امری اجباری نیست با این همه هرچند که از این بزله هایش از خنده قش می کردیم، واقعیت این است که به سختی شکممان را سیر می کردیم و آخرین امیدش را به حرفه من به عنوان پیشگو و فالبین بسته بود با لباس مبدل ژاپنی در صندوقی قبر مانند پنهانم میکرد و با زنجیر می‌بست تا بتوانم تمام سعی خود را به کار ببرم و پیشگویی کنم در همان حال دل و کتاب دستورش را به هم می ریخت تا به ترین روش برای متقاعد کردن مردم دنیا را نسبت به کشفیات جدید من پیدا کند. خانمها و آقایان، در اینجا در مقابل شما بچه ای قرار دارد که کرمهای شبتا به ازغیال زجرش دادند و شماها که با چهره ناباورتان اینجا ایستاده اید اجازه بدهید ببینم آیا یا جرعت می کنید که از او بپرسید که چه وقت مرگتان فرا خواهد رسید اما من حتی قادر نبودم که روزش را هم حدس بزنم از این رو او از غیبگوی من معیوس شد برای اینکه که فکر می کرد که تنبلی دستگاه گوارش نظم قده پیشگویی را به هم می ریزد و پس از آنکه که به خاطر خوشیم محکم بر سرم کفت تصمیم گرفت که مرا پیش پدرم ببرد و پولش را پس بگیرد اما در آن هنگام بر حسب اتفاق متوجه شد که میتواند عملا از خاصیت الکتریسیته درد استفاده کند و دست به کار ساختن نوعی چرخ خیاطی شد که با قرار دادن ظرف اجامت و خونگیری در آن قسمت از بدن که درد میکند کار میکرد از وقتی که شبها به دلیل زرباتی که برای دور کردن ناهوست به وسیله سه و به سرم می کوبید، نال وزاری می کردم، مجبور شد از من به عنوان وسیلهای برای آزمودن اختراعش استفاده کند، و چون بازگشت من به تأخیر افتاد، بار دیگر خوشخوریش را باز یافت، تا اینکه چرخ خیاطی چنان خوب کار کرد، که نه تنها، بهتر از یک خیاط نوآموز می‌دوخت، بلکه بر حسب موقعیت و شدت و ضعف درد، نقش پرنده و گل را نیز می‌دوخت. داشتیم خودمان را متقاعد می‌کردیم بر ها پیروز شده‌ایم که ناگهان به ما خبر رسید که در فیلادلفیا ناخداوی کشتی که سعی میکرده تجربه تریاق را بار دیگر تکرار کند، جلوی چشم کارکنانش به قبار تبدیل شده است. دیگر مدت‌ها خنده بر لبش نیامد از گذرگاه سرخپوستان سرخ و هرچه بیشتر خود را گم و گور می خبر دریان که به بهانه ری کردن تب زرد به سرزمین ما حمله کردند واضح تر به گوشمان می رسید دریان در سر راهشان هر خزنده بی و سفالگر احتمالی را سر می بریدند. نه تنها بومیان را به سبب بی احتیاطی بلکه همچنین چینی ها را به دلیل پریشانی و اختلال هواس سیاهان را از روی عادت و هندی ها را برای افزون کردن مار می‌کشتند. آن وقت هرچه گلوگیاه و هرچه جانور بود و تمام معدن ها را از بین بردند. زیرا خبرگانی که در کار جادو کار شناس بودند به آنها آموخته بودند که مردم جزایر کارائیب این قدرت را دارند که ماهیت خودشان را عوض کنند تا بتوانند سفید پوست ها را گول بزنند. نمیتوانستم بفهمم که این خشم از کجا ریشه گرفته بود و چرا ما اینقدر می‌ترسیدیم تا اینکه سرانجام از بادهای گواخیرویی جان به سلامت بردیم و تنها آن موقع بود که او جرأت پیدا کرد پیش من اعتراف کند که پاد زهرش چیزی جز ریواز و روغن ترپانتین نبود و او دو پول سیاه به یکی از دوستانش رشوه داده بود که آن افعی که تمام زهرش را گرفته بود بیاورد در خرابه‌های یک میسیون مستعمره ای به این امید فریبنده که گهگاه قاچاقچیان از این محل عبور میکنند و به این دلیل که آنها مردانی هستند که میشود به آنها اعتماد کرد و آنها تنها کسانی هستند که زیر آفتاب جیوه ای و آن در اندشت شورزار دست به کارهای تحور آمیز میزنند زند، اقامت افکندیم. اوایل سوسمارهای نمکسود و گلهای آن خرابه را میخوردیم و هنوز آنقدر روحی داشتیم که انگام خوردن مچپیچهای پخته او باز هم بخندیم، اما وقتی دست آخر کارمان به جایی رسید که حتی تارن کبوت های روی چاه ها را خوردیم، تازه متوجه شدیم که چقدر از دنیا پرت هستیم، چونان وقتها در مقابل مرگ هیچ راه چارهی ای خیلی راحت دراز کشیدم تا کمتر آزارم دهد در حالی که او هزیان گویان زنی را مجسم می کرد که چنان ظریف بود که تنها با کشیدن آهی می توانست از دیوارها بگذرد اما آن خاطری خلق سائه هم هیله و ترفندی بود که از نبوغ او نشأت می گرفت تا بتواند مرگ را با بیماری عشق گول بزند با این همه در لحظه ای که مرگ رو در روی ما بود او زنده تر از همیشه کنارم آمد و تمام شب را به تیمار من گذراند آن شب را با چنان شدتی میاندیشید که هنوز نتوانستم بفهمم که آن سوت و سفیر میان ها صدای باد بود یا صدای فکر او و پیش از سپیددم او با همان صدا و با همان عزم گذشته به من گفت که حالا حقیقت را میدانم و تو یگانه کسی هستی که دوباره خوشبختیم را به هم زده ای پس باید همت کنی چون همانطور که خوشبختی مرا وارونه کرده ای همانطور هم باید آن را به حال خود باز کردانی. آن وقت بود که آن اندک محبتی را هم که به او داشتم از دست دادم آخرین تکه های لباس پارپوره را از دنم درآورد. مرا در سیم خاردار پیچید بر زخم‌هایم سنگ نمک مالید. مرا در آب نمک ادرارم خواباند از با آویزانم کرد تا آفتاب پوستم را بکند و همچنان که بر سرم فریاد می‌کشید گفت که این خفت و آزار برای تسکین زجر آزارهای او کافی نیست سرانجام مرا با نکبت و بدبختی به آن سیاه چال عذاب و توبنداغ تا بپوسم. همانجا که مبلغان مستعمرچی به را روح تازهی بخشیده بودند. با تمام دوز و کلکی که در صدا درآوردن بدون باز کردن دهان بلد بود و هنوز هم به کافی این کار از او برمی آمد شروع کرد به تقلید صدای ایوانات حلال گوشت. صدای چوگندرهای رسیده و زمزمه چشمه ها تا این توهم بر من چیره شود که از فرت تنگ دستی در وسط بهشت میمیرم و به دین عذابم دهد وقتی سر انجام غاچاخچیان را فراهم کردند و او به سیاچال عذاب و توبه من میآمد تا چیزی برای خوردن به من بدهد تا مبادا از گرسنگی بمیرم آن وقت تاوان آن صدقه را از من پس گرفت ناخونه را با ان بردست می کشید و دندانهایم را با سنگ چاغ و تیز میزد و تنها مایه دلداری و تسلی خاطرم این آرزو بود که زندگی به من انقدر فرصت داد و بخت با من یار باشد تا بتوانم با شکنجه و آزاری به مراتب بدتر از قید این همه رسوایی رها شوم. من تعجب میکردم که چطور در مقابل بوی آزارنده گندیده خودم تاب می آورم و اومدام پس مانده غذایش را جده من میانداخت و تکه گندیده سوسمارها و لاش خورها را به گوش و کنار سیاه چال پرت میکرد تا هوای سیاه چال مرا مسموم کند نمیدانم چه مدت زمانی گذشته بود که لاشه خرگوشی را آورد تا نشانم دهد که ترجیح می آن را دور میاندازد و برای خوردن به من ندهد اما من دیگر طاقتم تمام شده بود و سراپا کینه بودم از این رو گوشهای خرگوش را گرفتم و آن را با تمام نیرو در این خیال واهی که این خود او بود که تک میشد می نه خرگوش محکم به دیوار کوبیدم. و آنگاه آن اتفاق همچون رویایی پیش آمد خرگوش با جیغی هر آسان دوباره جان گرفت و جست زنان در هوا به سوی دستهای من بازکششت. و بدینسان زندگی بزرگ من آغاز شد. از آن وقت به بعد سراسر جهان را زیر پا گذاشتم، تپ را در مقابل دو پشیز از آنها که دست خوش بیماری ملاریا بودن بیرون آوردم و مردان کور را با دریافت چار پشیز و نیم بینایی بخشیدم و آب را از بدن بیماران مبتلا به استسقا با هیجده پشیز بیرون کشیدم و آدمهای های افلیش را اگر مادرزاد زاد باشند با بیست پشیز و اگر بر اثر حادثه یا دعوای پرشر و شوری دست و پایشان را از دست داده باشند با بیست و دو پشیز و اگر به سبب جنگ یا زمین لرزه یا حمله پیاده نظام یا هر نوع بلای عمومی شل شده باشند با بیست و پنج پشیز شفا بخشیدم طبق ترتیب خاصی تمام بیماران عادی را یک جا مداوا کردم دیوانه ها را بر حسب نوع دیوانگیشان بچه ها را نصف قیمت قبل ابلهان را رایگان و بیچشم داشت و چه کسی جرأت می کند که بگوید من دوست نیستم ها خانوم ها آقایان و حالا بله حضرت فرمانده گردان بیستم به افراد خود فرمان بدهید که موانع را از سر راه بردارند و بگذارند که بشر مهنت کشیده بگذارد جزامی ها در سمت چپ قشی ها در سمت راست افریچ جایی که سر راه را نگیرند بان جان پشت آنها که کارشان خیلی فوری و فوتی نیست فقط خواهش می کنم که زیاد دورور من ازدحام نکنید چونان وقت اگر همه بیماری ها با هم قاطی شدند و مردم از مرضی که نداشتند شفا پیدا کردند من دیگر مقصر نیستم و آنقدر به نواختن موسیقی ادامه بدهید تا سیخ ها ذوب شوند آنقدر فش, فش هوا کنید که فرشته ها بسوزند و میگساری را تا سر سرحد مرگ عقل به راه بیندازید. زن پتیاره بند باز و اکاز همه را به خرج من خبر کنید. خانم ها آقایان چون همین جا بدنامی بلکمان ها خاتمه پیدا می و آشوب و همه همه جهان آغاز می شود. چون این است که با به بردن شیوه نماینده کنگره در صورتی که معالجه من مؤثر نبود و بعضی از بیمارانم بدتر از سابق شدند، آنها را خواب می کنم. تنها کاری که نمی کنم زنده کردن مرده هاست. برای اینکه به محض اینکه چشمشان را باز می کنند، از فرت خشم به کسی که آسایش آنها را بر هم زده است حمله نمی کنند. و وقتی که کار از کار گذشته، آنها که مایل به خودکشی نیستند، بار دیگر از شدت سرخوردگی میمیرند. اوایل گروهی از دانشمندان مرا تعقیب میکردند تا درباره قانونی بودن شغل من بررسی کنند. وقتی از این نظر متقاعد شدند، به جهنم شمعون مجوسی حوالتم کردند و مرا شایسته زندگی تو دانستند تا اینکه که سرانجام بتوانم تقدس پیدا کنم اما من بی آنکه به شعن و آنها بی کرده باشم جواب دادم که من هم دقیقا کارم را از همان حدود شروع کردم واقعیت این است که مقدس شدن پس از مردن چیزی نصیبم نمی کند. من من عنوان هنرمند تنها چیزی که می این است که زنده باشم تا بتوانم بی سر خر به مسافرت با این ماشین شش سیلند که آن را از کنسول ملوان ها خریدم ادامه بدهم. با این راننده معتقد به تسلیس که در شهر نیورلان در اپرای دزدان دریایی خاننده ی باریتون بود. با پیراهن ابریشمی که تنم میکنم، و عطرهای شرقی و دندانهای زبرجدیم کلاه حسیری پت و پهنم و دگمه های درنگ. در خواب فرو روم. میان که ساعت دار بالای سرم باشد با ملکه های زیبا برقصم و آنها را در حالی که از توانایی پوچ و توخالی من انگشت به دهان ماندهاند به حال خودشان رها کنم و از اینکه مبادا روز چهارشنبه خاکستر آخرین روز روز مقدس تمام استعدادم را از دست بدهم دست و دلم ننرزد زیرا برای ادامه این زندگی شاهانه تنها چیزی که با ان نیاز دارم، چهره ابلهانه است که با آن ردیف مغازههایی که از اینجا تا آن سوی غروب در تملک دارم بیش از حد لزوم خافاف ابلهانه جهانگردانی را در پیشرو دارم که برای گیر آوردن عکس دریا سالار به میزدند و حالا برای عکس امضا شده من، و نیز حوییم هایی که شعرهای عاشقانه مرا چاپ کرده و مدالهایی که نیم رخ من در آنها نخش نقش بسته است سر و دست می شکنند و تکه پار لباس هایم را سر دست میبرند و این همه برای این است که تمام روزها و تمام شبها را مثل مجسمی پدران و بزرگان این سرزمین بر مجسمی اسبی مرمرین بنشینم. و تمام مدت پرستوها سراپایم را با فضله مزین کنند. جای تأصف است که بلکمان بدغرب نمی این قصه را تکرار کند تا مردم ببینند که من آن را از خودم نساختم. آخرین باری که او را به رعیل این در این دنیا دیدند آخرین نشانهای شکوه پیشین خود را از دست داده بود به دلیل خشونت و مشقت بیابان روحش همچون کشدارگاهی آشفته و استخانهایش در هم ریخته بود. اما هنوز یک جفت زنگوله برایش به جا بود که دوباره در بندر سانتا ماریا دلدارین در آن روز یک شنبه با آن صندوق شوم و مقبره مانند ابدی سر و کلهش پیدا شود. به جز این این بار نمیخواست پاد زهر بفروشد. با صدایی که از فرط عیجان میلرزید به منوآنها التماس میکرد که او را در ملع عام تیرباران کنند تا این مخلوق مافوق و طبیعه دوباره زنده شدن خودش را به نمایش بگذارد خانمها آقایان اگر حق دارید پس از اینکه آن همه از دست حقه های شیطانی من بنوان عنوان فریبكار و دروغگو عذاب کشیدید حرفهای مرا باور نکنید اما بوستخانه‌های مادرم سوگند یاد میکنم که مدرک و گواهی که امروز نشانتان می‌دهم به هیچ وجه با آن دنیا مربوط نمی‌شود بلکه صرفا یک حقیقت پیش با افتاده است در صورتی که کمترین شکی برایتان باقی مانده توجه کنید که دیگر به شیوه مرسوم نمیخندم و جلوی تمایلم را گریستن میگیرم چون آن قاطعیتی در تصمیم خیش پیدا کرد که دکمه های پیراهنش را باز کرد با چشمان اشکبار های متوادی بر سینش گفت تا بهترین نقطه را برای مردن نشان دهد با این حال ملوان ها از ترس اینکه به حیثیت و اعتبارشان لطمه‌ای نزنند جرأت کردند به طرف او تیراندازی کنند مردی که گویا سابقه داروها و جادو جنبل کردنهای گذشته او را هنوز فراموش نکرده بود یک قوطی پر از ریشه گیاه سمی معلوم نشد از کجا برایش آورد که قادر بود تمام ماهی دریای کارائیب را به سطح ها بیاورد در آن را با اشتیاق بیش از حد باز کرد انگار که واقعا میخواست آن را بخورد همین کار را هم کرد خانم ها آغایان اما خواهش می کنم نشوید یا برای آرامش روح من دعا نکنید چون این مرگ چیزی به جز عیادت و بازدید نیست این بار کارش چنان با صداقت تو هم بود که اصلا جی قداد مرگی نمایشی از خود در نیاورد مانند خرچنگی از میز پایین آمد روی زمین پس از کمی تردید مناسب ترین جا را برای دراز کشیدن پیدا کرد و از آنجا چنان به من نگاه کرد که انگار به مادرش نگاه می کرد و آخرین نفسش را میان بازوانش بیرون داد همچنان جلوی عشقهای مردانش را گرفته بود که همش در تشن و به هم پیچیده بود البته اولین بار بود که علم من با شکست مواجه می شد او را در صندوقی که از پیش اندازش را مشخص کرده بودم گذاشتم حسابی تویش جا گرفت برای آرامش روحش نمازی ترتیب دادم که برایم پنجاه و چهار پشیز تمام شد چون پیش نماز خرقه طلایی تلایی تن کرده بود و سه کشیش دیگر نیز همراهیش می کردند مقبره ی برایش ساختم که در خوره یک امپراتور بود بالای تپهی که گزرگاه دلنگیز در این نسیم ساحلی بود، با نمازخانه خانه کوچکی مخصوص او، با لوحه فلزی که با حروف گتیک رویش نوشته شده بود. اینجا بلکمان مرهوم آرمیده که به غلط او را بدقلب میدانستند. گول زننده ی دریا و قربانی علم. وقتی آنچه در خور شهن و فضیلتش بود، با تشریفات و احترام به جا ورده شد، شروع کردم به انتقام گرفتن از آن همه رسوایی و افتضاحی که بر سرم آورده بود. او را در آن مقبره نشاندار دوباره زنده کردم و گذاشتم تا از وحشت بر خود بپیچد. این جریان پیش از حمله ها به سانت ماریا اتفاق افتاد. اما مقبره با شکوه بالای تپه دست نخورده در سایه اجده که برای خوابیدن در بادهای اویان و سطلس از تپه بالا می روند سر جای خود قرار دارد. و هر بار که من گذرم به اینجا می افتد یک ماشین پر از گل سرخ برایش می آورم و قلبم در و حسرت خوبی های او به درد می آید. اما بیدرنگ گوشم را به لوح می چسبانم تا صدای گریهش را در میان تک پاریان صندوق زهوار در رفته بشنوم و اگر از غذا او دوباره مرده باشد بار دیگر به او زندگی میبخشم. زیرا حسن تنبیه به این است که او به زندگیش تا وقتی که من زنده هستم یعنی برای همیشه ادامه ده